بسم الله الرحمن الرحیم والله هو لا الا بالله جلسه سیزدهم ام توحید یک تا پرستان یقدی شنمندگانی که در این مجلس حضور ندارن گفتند که او مطالب سنگین ما درک نکردیم یقدی موضوع رو آسان‌تر کنیم میخوام خدمتشون شما ضمن عرض سلام بگم که وارد مراحل آسانتر شدیم و اون مسائل الهیات به معنی الاخص بود یه قدری مشکل بود اینا گفته بودم که ما سه تا سیر اصلی در الهیات داریم یکی من الخلق الحق، از مخلوقات به طرف حق تعالی اینا دلالت بر وجود اون داره. بعد اونجا که رسیدیم سیر من الحق الحق، از خدا به خدا یعنی درباره صفات خدا، در از خانم که ویژگی های ذات واجه وجود صحبت کردیم. بعد قوس نزول رو تقیی کردیم. من الحق الالخلق. دو مرتبه سرازیر شدیم پایین. و گفتیم در اون مبحث رو جه توحید افعالی داریم صحبت می‌کنیم که همه عالم از فیض خدا که از اون میاد. از خانم که من میشن و مسائلی داشت که اونجا مطرح شد. حالا رسیده به خلق یعنی از خلق رفتیم به خالق از خالق باز برگشتیم به خلق حالا روی توحید عبادت صحبت میکنیم که وظیفه خلقه که او رو به یگانگی عبادت کنن و پرستش کنن اولا خدای تعالی نسبت به همه ما حق داره و اینکه العبد و مافیده‌هی کان لمولا بنده و چه بنده داره ما دو مولاست بنابراین حق خالقیت بر ما داره ما رو ایجاد کرده وجود داده همه نعمت ها از اوست بنابراین در برابر این حق باید ما بندگی کنیم بندگی هم به نف خدا تموم نمیشه به نف خودمونه بعد میگه یا ای حنناس هل من خالق غیر الله یرزقکم من السماء والارض فانا توقوا کن ای مردم آیا خالقی جز الله هست که شما رو از زمین و آسمان روزی میده پس به کجا میرید به کجا برگردنده میشوید به سوی خدای خودتون بیاد بندهگو رو بکن پس اینجا حق خداوند رو به خاطر خالقیتش و رزاقیتش اثبات میکنه و ما چون خالق و رازق ما اوس در مقام شکرگزاری و عبادت رو برمیاییم به طوری که این شکرگزاری هم به نفع خود ما تمام میشه ما رو میسازه انسان کامل درست میکنه از نقاعث که ما داریم ما رو نجات مید از بندگان خدا حق خدا رو قبول دارن ولی میگویند که خدا من مقربانی داره که ما اگر به اصطلاح خضوع و خشوع در برابر اون مقربان بکنیم چون اونها نزدیکتر از ما به خدا هستند اونها برای ما به درگاه خدا دعا کنن یا شفاعت بکنن زودتر به اجابت میرسیم از این جهت این بهانه رو درست کردن برای اینکه اعمال عبادی رو در باره بندگان انجام بدن اعمال عبادی چیه مثلا قربانی کردن تواف کردن، نظر کردن، سجده کردن در قرآن کریم یه آیه است در سوره زمر و لذین اتخذ من دونه اولیا، اونایی که غیر از خدا اولیاءی بر خودشون گرفتن میگن ما نعبدهم هم الا لیقربونا الله زلفا ما اینا رو عبادت نمی کنیم اینکه اینا ما رو به خدا نزدیک کنن حالا نمیگن ما اونا رو عبادت می کنیم میگن ما اونا رو وسیله میکنیم ولی همون عبادت رو انجام میدن اسمش رو وسیله گذاشتن عرب هایی که میگفتن ما اونا رو عبادت میکردیم برای بتها چکار میکردن دور بتها میگشتن از اون ها اجرت میکردن میخواستن زرگاه خدا واسطه بشه واسه ما تعظیم میکردن برای اونها قربانی واسه اونا می آوردن اگر کسا، کسانی کتاب الاسنام محمد ابن سائل سائب کلبی رو بخانه که اون نزدیک هزار و چند سال پیش این کتاب نوشته اونجا قشنگ نوشته که با بوت اینا چه می کردن چه رفتاری می کردن همین کارهایی که تقریبا یه دسته عوام و با قبور عیمه علیه السلام و, و اولیاء میکنن همون کارها رو میکردن. اینا هم این رو میکنن اسمشو میذارن تبسل خیال میکنن با اسم ماهیت مسمى عوض میشه اگه شما قلهای نکرد لباب بخوری بادی اسمشو بذاری انفاق که عوض نمیشه ماهیت قضیه اسمش که حرام نیست رباب فعلش حرامه به هر حال اینجا قضیه اینطوریه اونا هم گفتن ما نعبدهم الا ليقربونا الاله ذلفا ان الله يحكم بينهم يوم خدا روز قیامت بین اینها و موحدین حکم میکنه ان الله لا يهدی من هو کاذب خدا کسانی که دروغگون و ناسپاس هستن هدایت نمون اینا دروغ میگن زیرا میگن با عبادت اینها ما به خدا نزدیک میشیم این دروغه با عبادت خدا به خدا نزدیک میشیم نه با عبادت ناسپاسن به دلیل اینکه نعمت ها رو اینا نمیدن نعمتها رو خدا میدن این حضرات عبادت غیر خدا رو می کنن. به جایی که در واقع عبادت خدا یا سپاسداری از خدا تا حالاست بنابراین این آیه که در همون عبائل سور شریف زمره خیلی واضحه که از کنم که مشرکین چه می کردن پس در قوس نزول اولاً خداوند به خاطر اینکه که خالق برازق ماست حق عبادت بر ما داره یعنی حق شکرگزاری از اون داره و اون عبادت وسیله تقرب خود میشه منطقه غالباً کسانی که به شرک رفتن یه واسطه رو اونا رو عبادت میکنن میگن اینا به خدا مقربن ما رو نزدیک میکنن خداوند میفرمد که اینا هم دروگان هم کاذب. بندگی و اظهار زلدت در برابری یه بنده فقیری دیگه مثل خودت تو رو بالا نمیبره ترقی میکنی بلکه به زلدت تو اضافه میکنه است که از گدایی دیگه التماس مال مثلا میکنی و بعدم نعمت دهنده خدای تعالی است عبادت یعنی و شکر نعمته شما خدا بهت نعمت دادی داری شکر این مخلوقی رو میکنی که خودش از خدای تعالی نعمت میگیری این آیه خیلی آیه تکندنده و نکته داره و مثلا اینه که خوب توجه کنید که میگویند که ما عبادت نمی کنیم اینا واسطا توس... توسطل به اینا میکنیم ولی میگیم که خب اون هایی که صدر اسلام ارز کنم که بود پرست ها میکردن بالغیرتن بفرمایید چه میکردن در اونا که خدا اسمشو عبادت گذاشته؟ مگر نه اینکه قربانی میوردن جنه اونها میکردن، نظر برای اونها میکردن، توافدارشون میکردن، پس پس میرفتن در برابرشون، پشت به اونها نمیکردن، سجنه میکردن شما کم این کار رو با از کم اولیا خلافند، دوستان خداوند میکنین و بعد میگید که ما اینجا توسل این عبادت نیست آیا با تغییر اسم مصما عوض میشه؟ من اگه دروغ بگم اسمش رازگویی بذارم، دروغی تبدیل به رازگویی میشه؟ نمیشه که. حالا منابعی که نشون میده اون کار اونها غلط بوده، علاوه بر قرآن، احادیث نببی هم هست. ما برای اینکه تو محیط شیعه هستیم، البته بزرگان شیعه این کارا رو نمیکنن، نمیکردن مثل شیخ موفید، دیگر دیگرا این حرفا، ولی بالاخره یه دسته میبینیم دیگه تو این امامزاده ها این کارا رو میکنن دیگه. دیگران هم سکوت کردن در برابرشون و این سکوت خودش خیلی اهمیت خیلی مسئله گرانیه به حال بلیزه از کتب خود اینها دلیل میارید ولی کتب عهد سنت مملوبه از این مناهی چیزهایی که نه کرده مردم رو از این که این کارا رو بکنن اونجا در کتاب الاحتجاد که کتاب علی ابن عبو طالب توسیر اسماعیل ابن ابو طالبه از کنم که قید از حضرت امیر علیه السلامه این از علمای قدیم شیعه است کتابی نوشته الاحتجاج الا اهل در اینجا مناظرات پیامبر اکرم و ائمه رو با مخالفینشون یک یکی مطرح کرده جواب داده از جمله مناظره پیامبر با بت پرستان پیامبر فرمود که شما چرا اینا رو میپرستید چرا این مراسم رو اینا انجام میدید. اونا گفتن که اینا به خدا نزدیکن حالا برای این بوتها عرباهی رو قابل بودن و الا عبدا عقیدهش نبوده که این بوت جماد از من بالاتر و من شعور دارم زندم بوت جماده از کنم کنین عقیده رو نداشتن بلکه معتقد بودند که عرباهی با این بت ها مثل کسی مثلا عکس حضرت امیر علیه السلام رو براتش به اینجا به دیوار بزنه و معتقد بشه روح علی با این عکس تماس داره هی تعظیم کنه سجده بکنه قربانی براش بیاره اون بوت یه همچیز بوده سمبل یه شخصیت هایی بوده و اگه عقیدهشون بوده که این یه جمادیس خودشون که از اون بالاتر بوده خودشون و درگاه خدا می دعا کنن اون یه جماد چیکار بکنه بنابر این پیغمبر فرمود که چرا شما اینور؟ گفتن اینا مقرب اند الله هستن ما این اعمال انجام میدیم تا از کام که اینها نزد خدا برای ما شفاعت کنن همونطور که آیه قرآن میگه. بعد پیامبر مثال خیلی زیبا و جالبی برشون زدن. گفتن که اگر شما بخواید به حضور یه پادشاهی برسید یه دربانی هم داشته باشه. برای اون دربان سجده کنید، قربانی کنید. نظر کنی و از این کارا بکنی که اسمش عبادت هم. خب به حضور پادشاه که میخوای برسی چی کار میکنی؟ مگه بالاتر از این کاری هم هست بالاتر از سجده و طبعه و نظر و رکوب از سجده این کاره هست حتی که واسه درمونه در, در این میکنی واسه پادشاه چی کار میکنی؟ پس در عبادت این دوتا رو مساوی هم برار در عبادت با اینکه میگم مخلوق خداست. ولی اونطور که اون رو عبادت میکنی خدا رو و این شرک عبادی است هر کسی به تناسب اعمالش، مقامش، شعنش مراسمی رو میطلبه ما نمیتونیم برای یه دربونه در یه پادشاه همون مراسم رو انجام بدیم که برای پادشاه عقل این کار نمی کنی. پس پس بنابراین شما که میاین برای این واسطه ها و اولیه که گرفتین و از این افتخ از اومدونه برای اینها توافت میکنین و مکم هم, هم کار میکنین قربتان اینالله برای کسی هم اون وسط دفت نشده که بگیم برای اون شخص داری این کار بود شما که نظر میکنین ما گرز کنم که نظر برای خدا نمیکنین و همینطور این عبادیاتی که انجام میدی نظر و قربانی و سجده و چه و این حرفا حاجاتی که به اصطلاح خورا قدرت داره بن اونها فرزند به من بده من عقیمم تنین بکن از این حرفا اینا رو از اینا میخواین حتی یه شخصی تلویزیون دیدم گفتش که ما از اینها نمیخوایم واسطه بشن که به ما خدا بچه بده ما از خود اینا فرزند میخوایم صریح گفت خودم تو تلویزیون شنیدم خب بنابراین این پیغمبر فرمود وقتی که برای این واسطه ها شما این اعمال انجام میدید خواهد به حضور سلطان برسی چیکار میکنی؟ اونجا هم سجده میکنی، توافت میکنی، نظر میکنی، قربانی میکنی پس در عبادت اینها رو این دربونه با پادشاه یکی دانستی این شرک عبادیه این مثالی زد پیامبر که خوب میفهمیدن اونها هم در روز رستاخیز میگن که ما گرفتار عذاب هستیم به اون بوتهاشون به اون روح روح های که به این بوته ها توجه دارن میگن نسوی کن به رب ما شما رو مساوی با رب العالمین درست که قبول نداشتن که اینا مساوی هستن گفتن اینا مخلوق اینا چه اون روحه چه این سنگه چه این شوه در عبادت مساوی میکرده بودن اینها رو با خدا و بنابر این ما حق نداریم برای اولیاء خدا، دوستان خدا که قران هم گفته دوستان خدا داره الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وکانوا یتقون لهم البشره فی حیات الدنیا وفی آخره. لا تبدیل لكلمات الله حق نداریم اون مراسمی که برای خدا انجام میدیم برای اونها انجام بدیم، توبه کنیم، سله کنیم، از ارکانم که حاجت بخواهیم نذر کنیم و از این قبیل مسائل حتی ما حق نداریم که به اونها قسم بخوریم امام باغر فرموده که بابا خدا این همه به غیر خودش قسم خورده اگه کسی بگه چرا ما حق نداریم به غیر خدا قسم بخوریم خدا قسمت میدم به عبالفه که این کارو رو بسمن بکن مثلا حضرت فرموده لله ان به بما شاء امن خلقه خدا حق داره به هر کون از مخلوقات که میخواد قسم بخوره ولی سل خلقهی ان یقسمو الا به ولی مخلوقات حق ندارن قسم بخورن مگر به ذات خدا من دلائل شیر بیارم از روایات شیر در اهل سنت زیاده از کنم که چون بیشتر مخاطب ما مرزم میهن خودمون هستن این قسم هایی که دائما هست کنم که به غیر خدا میخورن ممکنه بگید که قسم خوردن ما میگیم به جون مادرم قسم به خاک, پای پدر، خاک قبر پدرم قسم از این چیزان مثلا مردم میگن خیلی اینا چه شرکه خب حالا سب کن من برای توضیح بدم قسم دو تا ورش داره یک بار قسم به معنی اشهاده دستوره نور آمده وقتی که زن و شوهری نسبت به هم مضمون شدم به خصوص شوهره مضمون شد نسبت زنش میگوید که زن من رابطه نمشروع با کس داره بعد چند بار این شوهر قسم میخوره اون زنم قسم میخوره اگر اون قسم خورد خنسا میشه این حرف این ادعایی که شوهر کرده اگر قسم نخورد سکوت کرد معلوم میشه این کارو کرده و واحد روش ا็จدام میشه و اگر طرفه این قسم خوردن زالم قسم خود که شوهر من اشتباه میکنه بیخود مزنه شده هم چیزی نبوده این دعان بهش میگن از هم جدا میشن به منزله طلاق چرا بلی که یا این زنه دروغ میگه رابطه نامشروع داشته میدونه شوهرش هم میدونه دیده مثلا این زنه خائل دیگه با این مرد نمیتونه حالا مال قسمم میخوره خدا را گرام میذاره به این که این چهار من دروغ میگه یا مرد دروغ میگه و اشتباه کرده یا همچین مردی که حاضرش شده زنشو مفتزه بکنه آمده اسم خدا میخوره به دروغ و زنشون این دیگه لایق ازدباهید با این زن نیست اینا هر از هم جدا میشن این قاعده لعان میگن که در سوره نور اوائل سوره آمده اونجا فرموده که با این کلمه قسم میخورن و میگه فشهادتو احدهم اربعو شهاداتن بلا انهو من بین مثلا آیه شریف بیارین اسم اون قسم و شهادت گذاشته یعنی قسم میخودن اونا ولی خدا یعنی میگه خدا شاهده وقتی میگه به خدا قسم یعنی خدا شاهده که این زن من رابطه اونا مشروع داشته یا اون میگه خدا شاهده که من نبودم و این مرد دروغ میگه پس قسم وقتی که به معنی اشحاجه هیچ کسی حق نداره به غیر خدا قسم بگه چون فقط خداست که همه جا حاضره و میدونه که این کارو کرده یا نه ولی اگر برای احترام بدون پسرم بدون بچه من این کار نکردم، نمیخواد بگه بچه من همه جا با من حاضر بود و با من شاهد گرفتن نیست ولی ازا اینا گیجوگم شدن دیدن در بعضی از روایاته که مثلا حضرت امیر یا پیانبر فرموده و در قسم به جان خودم که اینطوریه بعد از یه طرف هم فرموده که به غیر خدا قسم من حلفه به غیر الله فقط اشرک هر کسی قسم به غیر خدا و بخوره شرک آبرده اینا نتونستن نپهند وقتی که قسم رو به معنی می گیریم. که خدا همه جا حاضر بوده، ناظر بوده، شاهد بوده من این کارو نکردم یا اون این کارو کرده این به غیر خدا رو نبد از همین که دخالت داد برای غیر خدا همه جا حاضر و شاهد نیستم خداوند از قول عیسی مریم که از پیامبران بزرگه میگه پروردگارا کن تو شهیدان علیهم معظم تو پیهم من گواه بری نبودم با که بینشون بودم حالا ما طب پاییتنی کن انطلته ای برای هم بند ت کده شاید شهید وقتی که من رو مبر پا کردی تو مراقب میشون بودی تو بر هر چیز شاهدی من چه میدونم ان تو عذب همم پنه هم ابودک اگر میخوایداعذاابشون ک بندگان توست و ان تقف هم بهینکه انطل ع حکیب اگر میخواید بیاممریم از خود ب بره دو عزی رو حکیب هر میخوای طبقه ازتمت طبک حتی این آیه نشون نمیده که حضرت مسیح شفاعات هم میکنه چون اگر گفته بود لحم لهم پنک انتل غفور و رحیم شفاعت بود اگر میخوای بیاموزی البته تو مهربانی تو رحیمی یعنی بیاموز ولی میگه اگر میخوای عذاب کنی بندگان تو اگرم میخوای ببخشی تو عزیز و حکیمی عزیز یعنی قدرت حاکم بر همین حکیم رو حکمت هر کاری میکنه هر کسی رو که نمیبخشه ابو جهل و ابو لهب و اینا حضرت ابراهیم خواست راجع به قوم لوط شفاعت کنه فرمان اومد که یا ابراهیم اعرض عن هازا انه قد جاء امر ربك منهم اعطيهم عذاب غیر مردود از این توازا روی گردان عذاب خدا اومده پایده نداره یا مثلا حضرت نوح در پسرش که شما پاید کن اینهو لیسا من اهلک اینهو امالان غیر صالح فلا تسال ما لیسا لکه به ایم در واقع جواب منفی آمده خب این قسم که در مقام اشهاده اونو باز برای غیر خدا نب ولی حتی در قوانین مدنی ما هم هست که در دازگاه ها که قسم میخوان بدن دست رو قرآن میذاره ولی قسم به خدا میخوره اگه قسم به عبالفت نیچان قبول نمیشه یعنی از نظر قوانین مدنی هم تو قانون مدنی ذکر شده در مقام اشهاد کسی حق نداره به غیر خدا قسم بخوره خدا همه جا شاهد بوده مال غیبه و شهاده پس این در قوس نزول وقتی که به ما میرسه اونجا مسئله توحید عبادت مطرح میشه که جز خدای تعالی کسی رو عبادت نکنم شعار توحید عبادت چیه؟ لا اله الا الله لا اله الا الله یعنی چی؟ در اینجا این لا رو میگن لا نفی جنس بر سر اسم در امده اسم منسوب منصوب کرده لا اله ها. این یه خبر میخواد خبرش حض شده تو این عبارت خبرش از نظر بعضی اینه لا اله موجودون الا الله هیچ معبودی وجود نداره جز خدای تعالی جز الله این تفسیر غلطه و یکی از علمای برجستهی که زمان ماست حالا اسمشو نمیارم گفته که چون این غلطه چون میگه هیچ معبودی وجود نداره آورتون دوستان رو این همه معبود وجود. گاه و دین هم گاوب اینا رو دارن عبادت میکنن پس چطور هیچ معبودی وجود نداره جز خدا بعد گفته پس معنی اله یعنی خالق هیچ خالقی در زمین آسمان نیست جز خدا با. معنی اله که خالق نیست الوه یعنی معبود میگه من تخذ الوهه هو هوا بعضیا الهه خودشون هوای خودشون رو گرفتن هوای نفس یعنی هوای نفس اون خلق کرده هیچ عاقلی نمیگه هوای نفس من منو ایجاد کرده هوای نفسن جز وجود منه نه که منو خلق بکنه از من مستقل باشه پس ااددار همون معنی معبود رو میده منت اونی که هست شده خود قرآن راهنمایی کرده چیه قرآن میگه ذا کب ان الله ح حق ونممایت من دونه با خدا معبود حقه معبودهای دیگه باته ده شایستگی عبادت ندارن پس لا اله الا الله یعنی لا اله حق الا الله هیچ الهی سزاوار الهیت نیست جز الله نمیگه هیچ الهی وجود نداره این هم مردم دارن بطهار اله خودشون قرار دادن بعضی هوای نفسون رو اله خود قرار دادن لا اله حق الا الله ظالکه و ان الله هو الحق و انما يدعون من دون الله خب پس معلوم می که توحید عبادت شعارش لا اله الا الله و معنی این شعار اینه که تمام این معبودهایی که مردم پرستش میکنن همه باطلند هیچ کدومشون حق نیست چه هوای نفس باشه چه انسان ها باشه چه انبیا باشه چه اولیا باشه هیچ کدومشون سزاوار عبادت نیستند إلا الله مگر الله که حقه بعد اونا بعضیاشون از خان رازیان که مردم عبادتشون بکنن اونجا بت و بت پرست هرجور در داخل درافت شدن بعضیا مثل عیسی ابن مریم مثل علی ابن ابی طالب که علی ها خداش میدونن اینها رازی نیستن طبعا اونها همراه با اینها نخواهن شد اونها روز قیامت بیزاری میدون از اینها از کام که و اومد قیامت روز قیامت که میشه یک فرون کافر میشن به اینا یعنی میگن ما مخادفیم با این کار که شما به اسم ما میکردیم مقصول این است که پس عبادت اختصاص به خدای طالع داره و اسمشو اگر ما بذاریم توزل این با اسم عوض نمیشه بله هرچی شما اسمها رو تقیید بدیم مصمه خودش خودشی عوض نمیشه پس در قوس نزول ما به توحید عبادت میرسیم در توحید عبادت به قدری پیغمبر ما حساسیتشون داده که همه مسلمین نوشتن چه شیعه چه سنی. روزهای آخری که با اون طبهای شدید پیانبر میگرفته با همون تب از دنیا رفت و یه ظرف آب کنارش بود دست میزد تون و از کن به صورتش مثلا میکشید و یک پالشی بود که روز صورتش و امیدو اندکش بودن اینا یا خودش میداد گاهی اینو کنار میذارد گفت لعل الله لی ایهو دو بن نصره اتخذ قبور ان بیاهم و سالهی هم مساجد خدا ول نت کنه دیهود و نصره که قبرها و پیامبرانشون رو وسیله سجده و باوداد قرار داده اند اویا این حرف شیعه هستان اینا نقل کردند. همه نقل کردن که پیغمبر آخرین حرفاش این بود امت خودش رو بر حضر می داشت از کارهایی که اقوام پیشیم درباره پیانبره نشون کردن مثل حضرت ایسا و مثل ازیر مثل اینها که قلوب کردن درباره اینها و قصش این بود حتی ابن باقوه شیعی در کتاب ملای حضرت فقیه نقل کرده که پیانبر فرمود. ذال تاج الو قبري وسنن يعبد قبر من را بتی قرار ندهید که عبادت شود الله صلی الله محمد و آله پیغمبر توحید به قدری پیغمبر در این قسمت پا پیشولی داشته که امتش مبادا که حتی یک کسی گفتش که ماشاءالله و شد هر چه خدا بخواد و تاج تو بخواد پیغمبر گفت اجال تنیل الله نده من خدا شریک خدا کردی گفت پس چی بگم پیغمبر هم بگم قل ما شاء الله سمشه ادر هرچی خدا بخواد بعد از خواست خدا چه چی دیگه بخواد و ما تشاؤن الا انیشا الله رب العالمین باز یکی دیگه, دیگه پاشو سخنرانی بکنه گفت و من یوت الله و رسوله فقط رشد هر کسی خدا و رسولو شتاعت کنه به راه روش رفته راه راست و من یعصه ما و هر کسی آن دو را اسیان کند فقط قبا گمراه شده پیانبر گفت بسن خطیب انت عجب خطیب بدی هستی تو چرا میگی آن دو را من رو یه زمیر با خدا همراه کردی من دومی خدا نیستم بگو و من یعص الله و رسوله الله الله پیامبری داشتیم خداوند تو تربیتش کرده بود ادبنی ربی احسن تعذیبی خدا من رو تعذیب کرد ادب کرد و به تنش کرد ادب از کجاها ببینین یه وقتی مشایخی آمدن گفتن که ای محمد اصحاب تو زیر شکنجهن مثل بلال و امسال عمار و اینها و از کنم که ما از تو می‌خوایم که تو رو که بکتواف میکنی به این بوتها دستی بکشی این نجات پیدا میکنن پیانبر تو زنش اومد برای نجات اینا دست به سنگ و چوب کشتن مهم بعد یه ها متوجه شد نه نه نه نه اینا از همین بحانه میکنن پس اینا واسطن اینا مبررات حالا شرک میان خلابش میگه و الله ان ثبت نک اگر ما تو رو ثابت قدم نگه نداشته بودیم لغت که تطر کنا ال هم شی انقللیلا نزدیک بود یک چیز اندکی به اینها مشککن متمایل بشیم ازن به ازغ ناک از ضعفل حیافت و ضعفل من در آن صورت دو برابر ازذااق زندگی مرگ رو بر تو می چشانیم بله پییان بر مقامی داره و یه سر پستش از کام که لحظاتی وانست دار و پستشو بدون اجازه خدا خالی کرد رفت گرفتار شکمه نهنگ شد و و دا اولا آن من المسبهین اگه تصویح و تنظیح نمیکرد توبه نمیکرد للب فیبت نهی الا یوم یابستان تا روز قیامت تو شکم نهنگ گرش نشتم همون نهنگه زنده نگرم برشتم هم این آقا این پیغمبر خدا باش صحبت کرده مستقیم توا توايي نیست که شخص عادی نیست که بنابر اين اينکه پيامبر خدا اینطوری خدای خدايي تا آنها آدم بشيم که مبازيد باشند ولاده تر قبل از آن بازد اقوامين بخواد یه چیزایی به ما ببنده که ما نگفتیم لاخذ نام من هب اليمين ثم لقتق نام من با دست قدرت اون رو ميگيريم رج حيات رو قات ميكنيم ولی بله، پیام خدا عوضی نباید برسه خود شعن پیامبر آمان نمیدیم چقدر مهمه و عظیمه و دقیقه خلاصه این که در مسئله توحید عبادت انقدر دقیق بوده و اصحاب پیامبر دقیق بودن حتی داره که پیامبر در صلح هدعیبیه قبل از این که وارد مکه بشن عثمانو دامادشون بود دیگه حالا آره کاری نداری این بعد بد میگن لعن میکنن داخل داماد پیغمبر بود پیغمبر بشه اعتماد دار فرستاد داخل مکه تو برای باشون مذاکره کن ما میخوایم وارد مکه بشیم اون رفت دیر کرد گفتن عثمانو کشتن فورا پیغمبر زیر تک درختی با اینکه اصحاب اسلاح کافی نداشتن با پیغمبر همه بیعت کردن که ما تا آخرین قطع خون ما در ماه حرامه ما حرام خود اونا ماه حرامو قبول کردن یعنی آیین ابراهیم بوده حالا نماینده پیغمبر بوده با چون صحبت کنه کشتنش داماد پیغمبر یه امتحانی بود خدا میگه لقد رضى الله عن المؤمنین از با یعوم نک تحتش تتر فعد ما موافق قلوبهم خدا راضی شد از اون مؤمنانی که زیر اون تک درخت با تو بیعت کردن و صدق نیات اونها رو دانست درسته؟ بعد که این امتحان رو دادن اینا عثمان برگشت و معلوم شد که نه اونا حاضر به مذاکره شدن و بالاخره صلح و دعیبی رخ داد حالا منظور من این است که اصحاب پیغمبرم اینطور محکم بودن در مسئله توحید بعد در زمان عمر ابن خطاب خیلی پیسانی عمر دید که بعضی میرن زیر اون درخته که با پیغمبر نماز خونده بودن درکت نماز بود او یواشتواش این درخت مبارک بشه آه یواشتواش بهش توسط بود یواشتواش دخید بشن گفت بی بری این درخت رو به عرق کنین از نیشه در ارین به اون طرف درخت ارزش عرضش عبادت نداره اینطور مواظب بودن که مسلمان ها مبادا منحرف بشن از توحید از توحید قدم های اسلام گفتن مقدمه واجب واجبه مقدمه حرام حرامه اینا از باب مقدمه حرام خیلی کارها نباید انجام بشه خیلی کارها باید جلوش گرفته بشه حالا یار رفته اونجا نماز میخونه ولی به تدریج محترم میشه اون درخت و فلان نهربا از کنم اون درخت خصوصیتی نداره اونجا خصوصیت نداره برو پنج مچه اون طرفتر نماز بخون نماز برای خدا اهمیت داره این است که اینطور در اسلام به قضیه توحید عبادت نگاه میکردن حالا برای فرزندان علی علیه السلام که مامزاده ها باشن نیرون نظر میکنه گوزفند نظر میکنه در حالی که از خود علی نقل شده لعنت الله منذب حل غیر الله خدا لعنت کند کسی رو که برای غیر خدا حیوانی رو زب میکنی جان این حیوان خدا بش داده فقط به نام او و برای او اجازه داده که قربانی بشه حق نداریم که از کم اسم کسی رو بیاریم امامی پیامبری بوتی هیچ کسی رو آره که سریع قرآن کریمه که در موقع زب باید اسم خدا رو بیارین بسکر اسم الله علیه حال این توحید عبادت مسئله خیلی مهمی است که در قوس نزول ما باید بهش برسیم و فصل گرفتاری بزرگی هم برای مسلمان هاست چه شیعه چه سنی سنی در برابر صوفیه و اولیاءشنون که هستند از کم از این کارهای عجیب غریب میکنن احترامات پاقلانه میکنن به کرامت‌های اونا معتقدند اینا میتونن عقیم رو بچه‌دار کنن مثلا از هر فا خلاصه دیوخشون صوفیاشون سنیان برای امام شیعهام برای امام اینها متفاوته دیدیم که این کارا ممکنه خیلی بگم ناغا ما این کارا رو برای خدا میکنیم فقط برای اینا درود و رحمتی چیزی میپرسیم ما اعتراضمون به اون ادعا نیست همه رو متهم به شرک نمیکنید عوام که این اعمال انجام میدن و اینا حتی مثلا نظر نظر سیغه داره یعنی شما که نظر میکنید باید بگی این نظر تو الله من برای خدا نظر میکنم که اگر حاجتم رو من مثلا این رو در راه خدا بدم اصلا در کتاب های فقه داره یعنی لفظی باید بگی نیت در نیتت اینطوری باید باشه و عبادت نظر عبادت قسم عبادت در وقت که معنی اشهاد توش هست اینها تواف عبادت خدا میگه ولیت تب وفو بالبیت تلعتیق باید به اون خانه قدیمی که ابراهیم با پسرشونو رو تعمیر کرد و اینها دور اون عبادت کنن چون معنی اون تواف یعنی محور توی محور در اسلام نه پیامبر نه, نه امام نه امامزاده از خدا است بقید پیامبرم دور اون میچرخید یعنی خدای مهبرتوی علی هم دور اون میچرخید یعنی خدای مهبرتوی این مقامات اختصاصی در عبادت برای خدای تعالی اینجا یه شبهی پیش میاد در مورد سجده که خدا میگه به پرشتگان گفتم که در برابر آدم سجده کنی استودود آدم خب پس اگه سجد عبادته چرا از کم پرشتگان چرا برادران یوسف در قصر یوسف در برابر او خرر او لهو سجده به سجده افتادن چند جواب به این موضوع داده شده که در کتاب های شیعه بستانی هست من بیشتر از کتاب های شیعه میگم که محیط ما محیط است که قبول دارن کلمات امام حسن اسکری امام حسن اسکری در تفسیری که منصوبه به ایشونه و همتا در ربایات که از ایشون آمده در کتاب و فرمودن که اینا به طرف آدم سجده کردن یعنی اون قبله شون بود مثل تحبه که قبله ماست ولی برای خدا سجده میکنی امانفخر رازی هم در تفسیرش همین گفته گفته اگر کسی بگه که اینجا میگه قلنست و دول آدم گفت سجده کنید برای آدم بعد جواب میده که خداوند میگه اقم صلاح لدلوک شمس برای ازکنم که دلوک شمس حالا بعضی گفتن غروبه بعضی گفتن زهره زوال ظهر سجده کنید ما حالا برای خورشید سجده میکنیم میگه برای خورشید در این وقت سجده کنید یعنی اندتلو شمس این غروب شمس یعنی هنگام طلوع شمس هنگام فلان نه اینکه که خود رو بپرسید بلکه خدا گفت دات هست که در شمس در آیدی بگر برای خرشیدو ما سجد نکنیم پس بنا به بنابرای یه تفسیر که آدم در حقیقت به طرف آدم برای خدا سجده کردن قول دیگه هست که دهی مفسرین گفتن ما سجده دو جور داریم یه سجده کرامت و احترام که قبلا مرسوم بوده و یک سجده عبادت و بندگی خدا هرگز نگفته شما عبادت آدم بکنید چرا؟ بلکه عبادت غیر خدا شرک خدا که به شرک فرمان نمیده به مدعی یعنی شیطان میتونست به خدا ابلیس میتونست به خدایا تو که میگی من سجده کنم برای آدم مگه سجده شرک نیست خب من شرک کنه میخوام انجام بدم برای خودت هزا تا سجده ما پس اون سجده عبادت نبوده و الله خدا منطقش معاذ الله شکست بخورد در برابر شیطان اون سجده احترام و کرامت بوده ولزا در آیه شریف هست که قیتان گفت ارائی تلزی کرم تهو علی این آدمی که تو رو بر من گرامی داشتی احترامش رو بر من لازم کردی من خود او و فرزندانش رو سعی میکنم که گمراه کنم از عبادت تو منصرف بشن هر با. بنابراین این یه امر از باب احترام و کرامت بوده نه سجده عبادت این هم یه است که داده شده عرض جواب به نظر من خوبه و شبه رو میتونه رفت بکنه اینا اما این هم اضافه کنم اگر در مذاهب پیشین سجده دوجور بوده سجده عبادت سجده کرامت ولی در اسلام هر دو شده هر دو اختصاص به خدا پیدا کرده و همین جد مفسرین در آیه شریفه که در سوره شریفه آل امران آمده که خداوند هیچ کسی رو به رسالت نفرستاد. که اجازه بده مردم براش عبادت کنن سجده کنن فالان ها ارز کنم که ما کانل بشرن ان یاتیه الله و الحکم و النبوه ثم یقول للناس كونوا عبادا هیچ بشری نیست که خدا کتاب و حکم و نبوت پیش بده بعد بیاد به مردم بگه عبادت بکنین منو سجده کنین واس من ابداً چنین چیزی نیست در ذیل این آیه در مجموع بیان من دیدم که آمده که یکی از اصحاب پیغمبر رفته بود شام دیده بود اینا در برابر کشیش های بزرگ به طریق بهشون میگفتن اون به طریق های بزرگ سجده میکنن مردم. آمده که پیاره سلدا شما که شندت از اینا بالاتره اجازه بدیم ما در برابر سجده بکنیم پیامبر گفت نه سجده کرامت و عبادت در دین من نیست جز برای خدای تعالیم و بعد این آیه نازل شد که خداوند اجازه نداده برای پیامبری رو عبادت بکنه کرامتش حتا پیامبر اجازه نداده که دستشو ببوسن دستش رو ببوسن از می‌خواست دستش رو ببوسن دست میکشید گفت انی لستو به ملک من شاه نیستم الا ما انا عبد الله و رسوله من بنده خدا و پرستاده خدا هستم و نسبت به عبادات خدا من از همه جدیتر و سایتر بود باب و بها و اینا خودشون عبادت نمی بعدم بعد مورداشون رو دستور عبادت دارن که خودشون عبادت کنن حتی بها گفته قبله خود منم بتره من قبله کنیم باب گفته قبله خود منم اما پیامبر اکرم گفته که و الله نیل اخشاکم لله قسم به خدا من از همه شما بیشتر از خدا میترسند و اتقا ققوم له ولی افراط نمی کنم تفرید نمی کنم پیامبرتین در قرآن کریم میگه که ان اخاف ان عذاب یوم عظیم من اگه اسلام پروردگارم بکنم از عذاب روز بزرگ میترسم پیامبر صادق اینه اونها قباظایی که گفتن خدا در ما تجلی کرده لا یا هیکل کلی ال هی الله قسم به خود خدا کاذو با کذاب دروغگو بودن ظالم بودن و ترین درس این ایرانیایی گرفتن باهایی شدن همون باب و باها دادن که رو اول از بندگی خدا جدا کردن به بندگی خودشون در باغ خواندن جقول الله یا راهغفیهی کلی الله کل الله قول باهااز اللهه الله ان المتونالل فرید جز من خدای زندانی تنها خدایی نیست قول بهاست باب همینطوره میگه من خدا هستم با یا میگه هستن حضرت رب اعلا این تعبیر خدا از فرعون نقل میکنه او گفت انا رب بکم الاحلا فا اخزان و او گفت نکا اولا بل اولا که خدا عذاب دنیا آخرت و ارشتشون او اینا اسمون گذاشتن لجای پیغمبری که من میگه انا رب, رب اعلا هستن مش اون اینو بر به حال این مسئله توحید عبادت در قوس نزول مسئله فوق العاده مهمی است و جای خیلی مفسرتر از این صحبت داره. و سلام علیکم الله و برکا.